را دیو فیلم راه طی شده نویسنده فرهاد توحیدی بازیگران پژمان بازغی این نکته بگم که ایشون بازیگر است سیاوش شما من دور نخ ببندم دو که جو در سی جواد هاشمی هم تحلیل کرد خیلی شد تو خیلی مخلصه. مهدی بجستانی این <تصفح> با بازی ها یک کلمه حرف می‌زدی طرف Alen Santo. نوولان کارگردان و تهیه کننده عباس رافعی. نمای بسیار دور از شهر تهران و کوه اطراف. نمای دیگه که کمی نزدیکتر شده و برج‌های بلند تهران دیده میشن باز هم نمای دور که آهسته آهسته نزدیک میشه و در نهایت پسری جوان با محاسن کم و می بینیم که به سمت تئاتر شهر میدهه در نمای دیگه می بینیم که از کنار ساختمونی میدهه و به ساختمان تالار وحدت و بنیاد رودکی میرسه و وارد میشه وارده اتاق میشه که سه نفر منتظر اون نشستن یک مرد سیاه چرده فرانسوی هم اونجاست با دکتر و مرد فرانسوی دست میده میشینه نفر دیگه پسر جوانو به مرد فرانسوی معرفی میکنه معرفی این فیلم بیاد قبل از فستیبال انجام اونا به من قول دادن که همه چیز رو به همه چیز از, از اون که فکر میکردم بهتر پیش راست من از طرف شما گل دادم کاری نکنین که آوریه ما پیش اینا بره چشفایی دوکتا حاجی رو حرفم اصلا حرف نمیزن دستشان اولش منم آقا میزی بدونن ببینیم ایش همونطور که قبلا گفتم مراسم تحضیه در طول چند روز برگزار میشه اگه میخوایید از مراسم فیلم بگیرید باید در همون ایام به ایران بیاید. لطفا اسامی گروهتون رو به من بدید تا بتونیم براشون ویزای ایرانو تایید کنیم. متشکرم. ولن؟ مرسی اگه حالا به حال دستیاری، عوامل صحنه یا منشی چیزی خواستن بگید که دوستان هستن. حالا ببینم شما دو تا چیکار می‌کنید. یالتون راحت. همه چیز حله. من گفتم میارم تعزیه رو میارم احمد و مهدی هنگام خروج جلوی در تالار وحدت با هم صحبت میکنن رفت. با هم بریم. من اومدم تهمیگاه ماشین بازی در بود. چیزا را گرفتی بود عوضش کنی یا چی هست حالا حسابش چهار تا پنجایی بابا ایول کشته آدم حسابیم دیگه به حاجی سوتی ندی فقضا کی من سوتی بگم آره دیگه حالا سلام با هم دست میدن و جدا میشن احمد لحظی میسته و بعد به راهش ادامه میده که باز هم نیم نگاهی به مهدی در فضای جلوی یک تکیه با درختان زیاد گروه فیلمبرداری آماده هستند. اما حاجی نیومده و گروه هنری فرانسوی از این ماجرا ناراحت و احمد و مهدی با هم جر رو بحث میکنن و موسی و دوگار عصبی جلوه یکی از همکارانش که کلاه داره قدم میزنه احمد بخواد شماره کسی رو بگیره که نمیگیره و مهدی گوشی و از بون میگیره موسی تو فرق. فانسی گردی. تا؟ رو از مهدی می‌گیره. نمی‌گیره بابا اینو بده Monsieur rassemblez-vous de suite patron Mais c'est fait ça c'est déjà dilué ça quoi c'est pas problème pas problème dis-moi dis-moi dis-moi pas problème rassemblez-vous آبا چی شده؟ چون ببونم میگه اگه شما برای کاراتون عرضشی قائل نیستی برای من خیلی مهمه کار ما انجام برم نه موسیقی چه حرفی میزنی ما در خدمت شما هستیم اصلا 10 دق دقیقه دیگه شما تموم. دقیقه تموم. خب خب چی میگه؟ چی میگه؟ میگه میخوام برم ببینم که دقیقه را میندازیش شما یه چایی یه همکار کلاه به به درختی تکیه داده و حالش خوب نیست اون صدا بردار. هر سه به طرفش. بابا میگه ده دقیقه معطلشون کنی. من میگه من قرار ارجوشون حاجی نمی‌ده من با چیکار کنم؟ وقتی واش میاد دیگه این این مکالمه زدن نپاتون میگه؟ اصلا ناراحت دیگه میرسه. تذیه رو روزی داریم. Monsieur تو که سقمونجی وزا. Alors میگه؟ چی دیگه چی میگه؟ میگه چی شده؟ ها؟ چی میگیریم؟ یا ا جیدی د نه کاردار آم. پرنگیرم داره میپرونه دیدی چتجو موسی این مشکل نداری یاستم میگیری میخوره ردیف میشه شما نمیخواد زنگ بزنید همین 10 دقیقه دیگه اجینجا ببین همین 10 دقیقه غلطی کاری یارو ببینجا او جن زدی رفت می میر می سر من میرم در خونه حاجی میای بابا موسی تو تکیه شما بن تو تکیه یه بگیریم من نمیدونم چی میگی 10 دقیقه وایسی اومدم آقا همین نه مهدی گروه فیلمبرداری رو به داخل تکه میبره و احمد سریم میره و سواره لندرویرش میشه و میره در یک زمین کشاورزی لندرویر از دور نمایان میشه و به ما نزدیک میشه از یک چاله گلالود که دو الاغ هم در کنارش حسرت میشه وارد زمین کشاورزی حاجی میشه حاجی با اوبرکوت و شالگردن روی تراکتوری نشسته و در کنار راننده باقیمانده محسوباتو آتش میزنه. احمد بوق میزنه. ماشین متوقف میکنه و از اون پیاده آشده. میشه. زنابش <تصفيق> اینو به نوشت یه روز از صبح تا غروب. ازین که کی نمیذن؟ تو خود اینو بنده تونوی کدای در میذین. ازین تناباشی تا تازیان نمیوفته. چه میدونن تابلوش قار کرده شم میگه من نمیام یادی میگم. شمار من... خوردن؟ ایدار صلحاتیه. باشه باشه بامیریم. باشه اگه ببینیم که فکر کنیم هوا گیرش کنه هوا گیر کنه چهارش کنه این هیچ چیزی نیفتاده. به راننده تراکتور میگه. حاجی از تراکتور پایین میپره. حاجی و احمد در راه برگشت از جاده که دو طرفشو برف گرفته رد میشن. در تکیه گروه در حال لباس پوشیدن و تمرینن. شبیه شمر با کت و شلوار و خود قرمز تمرین میکنه و شمشیری رو از دستیار میگیره. دستیار شال سبزی رو به کمر شخصی که لباس سبز پوشیده میبنده. تو شام بواد من آمدم در کربلا در کربلای پربلا من آمدم بدتر کنم خون در حیدر کنم بزن طبال ناغماور بزن بنو صدابردار فرانسوی هنوز حالش مناسب نیست و در گوشه کنار یکی از همکارانش نشسته و کاری نمیکنه و فقط نگاه ها حاجی هم به اتفاق احمد از راه رسیدن از ماشین پیاده میشن و وارد میشن مرد با لباس سبز تمرین میکنه و شبر بوش کارشو رو تصثیل ب من که خبری نیست قبل که بیام بالش ما داشته ماشین کلنج میرفم. اگه دیگه همون بس ها به خاطر اینا کشون اینجا نه حاجی من فکر کنم به خاطر دوربین اینا اومدن یه تا من چه خبر احمد پیش گروه فرانسوی و مهدی میره و حاجی لبخند می زنه بفرمایید ها حاجا سلام علیکم آقا قروموت برم ما که حرفمون زده بودیم گفتیم که آقا ببخشید من حرفتون رو قطع موسی و برنار وابسته فرنگی فارسی پارسیرا مثل بلبل صحبت شکر خدا که این آقا فارسی بلدان ما که هرچی فارسی گفتیم این هم ولایتی ما یا ملتفت نشودن یا اینکه یه جوری دیگه به این بندوهای خدا حالی کردن از حقیقت داره شما دوست نداری با گروهتون برید برای فستیوال شنیدم که تزیه شما 23 نفر تماشاگر داره اولا که ما تماشچی همه خوشون ثواب ازا ثانیاً تزیه واسه لذت بردن نیست مردم اینا اش بیرن که ثواب ببرن سوال ما نمایش نمی‌دیم ما شبی می‌گردیم چون نژ داریم تو نژم که نشه تقلب کرد که سال به سال روز عاشورا باید نژم اجرا کنیم بعدش هم میریم سر زمینو بیدمون میزنیم من کشاورزم گندم میکنم گندم دیدین بله دونه گندم می‌پوشیم توی زمین مردم رو بدیم تازگیا دیدم توی شهر سمنله گندم دسته میکنن می‌ذارن تو این گلف که جو میاد. نظرتون کبول سرجوش. احمد و مهدی نگران نتیجه مباحثه به حاجی نگاه میکنن. حالا فکر کنید یه هفته یه جایی تو اروپا همین کار بدون نظری انجام میدید. باور کنید دفعه اول خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. شاید برای باقی هم این اتفاقی بیفته. برای شما بد نیست. خیلی ادوج دارن اروپا رو از نزدیک ببینن. ای ببینین که ما نمیخوایم اگه تذکره کربلا رو داده بودیم با سر می اومدیم می‌خواهم که فرهنگی جملات آخر حاجی رو برای موسی و دوگار ترجمه میکنه چرا نمیخوان بقیه مردم دنیا در لذت تماشای این نمایش شریک بشه؟ ای اینا بازیگران عرفه نمایش نیستن اینها کشاورزن، دامدارند. کار این گروه نمایش نیست متوجه ای تون من میشه دگاه میگن اگه دوست نداشتن چرا دوباره از احمد قرار گذاشتن؟ اما اصلا کاری قرار نمیده. من کی قرار گذاشتم؟ میدونی شی ما قرار که نذاشیم یعنی گفتیم که بیام فیلم برداری بکنن. نه من فکر میکنم اعتمالا تو ترجمهی حرفا مشکلی پیش اومده حاجی. Very good, نگاهی به احمد میکنه اه... و رو به موسی و جملات حاجی رو ترجمه میکنه. موسی و میگن که گذشته ها گذشته. ما میخوام از آماده سازی تعزیه و همچنین از مراسم تعزیه اگه نداشته باشه فیلم اشکالی که نداره. نه نداره. این همه فیلم عکس این با موسی رو و بخیه دست موسیو و فرهنگی از احمد و مهدی جدا میشه. احمد و مهدی هجبه چه و احمد به دنبال حاجی را میفته. حاجی و احمد سوار لندروور میشن. چند نفری در رفت آمد برای آماده سازی تعذیه هستند احمد و حاجی در ماشین و در راه بازگشت به زمین کشاورزی حاجی از همون جاده برف گرفته رد میشن شب شده مردی بلند قد با موری کمی بلند و عینک با لباس سبزی بر تن و تسبیحی در دست نشسته و از روی تک کاغذی میخونه و تمرین میکنه می می در وسط تکیه گروه تحضیه زیر نظر حاجی تمرین میکنه و گروه فرانسوی فیلم برداری و صدا برداری میکنه و از رفتن از علی علی. بولا، بولا، بولا، بولا، بولا، بولا، بولا، بولا. این از رفتن از باری کنان. باری کنان حالیه. حالیه دره. از شما رو خیر برو گروه به استراحت می و مرد سبز پوش چشماشو می بنده و در فکر فرو میره چشماشو باز می نگاهی به صدا فرانسوی می کنه که مغ به دیواری تکیه داده و نفس نفس می‌زنه. مرد سبزپوش نزدیکش میاد و آرام دستی بر شونش می‌ذاره. صدا بردار گویی آرامشی پیدا کرده، نگاهی به مرد می‌کنه. مرد سبزپوش سر صدا بردار فرانسوی رو با آرامش در دست می‌گیره و انگار انرژی مثبتی رو به اون منتحد می موسی موسیو دوگار در کنار فیلم بردارش و احمد نظارگر این صحنه هستند حاجی نسخه های تعذیر رو مرور می موسی موسیو با مهدی صحبت می حاجی با از مهدی می پرسه که این چی می لیه حاجی آقای دوگار می پرسه که آقای قد که سبز پوشیده اسمشون چیه والا ما خودمونم می خوشیم اما پوشمونه سید, سید هادی. اولی، اولی، از اولی. اولی. اولی. اولی. سید هادی با لباسی سفید و جلیقه‌ای مشکی از تکیه بیرون میاد و سوار ماشین رو با میشه احمد و مهدی سری خودشون رو به ماشین میرسوند سید هادی شیشه ماشین رو پایین هادی خوان ببخشی آقا مهدی با شما کار بله ببخشید هادی خان. این فرانسوی مخصر امشب شام در خدمتون باشن من رو معاف کنید چرا هادی خان؟ اینجام که کار میکردن. به احترام حاجی عرفی نزدم خیلی هادی خان. بی بیزمد یه دقیق پیادشین بچه ها رفتن این خونه سنتی این بغل قلیون بکشن بریم یه دقیقه باشون اختلاف کنید تعذیه برای اینا یه چیزیه مثل همون قلیون که رفتن بکشن مثل همین خونه که برای توریست و بزک دوزکش کردن با اینکه مردم محترمی هستن ولی من درن نمیخواد کارمو به اندازه‌ی نی پیش قلیون یا دستبالا گیریمی که میخرن تا صبحاتی ببرن پایین بیارم. خب حالا من چی بهشون میگم؟ ولی خب شرمنده. نمیتونم بیام بیام. میکنم مگه بتونی جور کنید بعد نباشه صحبت رفتن فرانسه است در درججان که هستی؟ بله دور همیم دیگه. تاوودی همه میگن حاجی میخواد با شما صحبت کنید شما مگه موافق باشین حرفی نداره. خب چرا جای همه با خود حاجی صحبت نمیکنید؟ خب میدونه خیلی حاجی که هیچی بروز نمیده گفتم اگه با شما مشورت کردن نظر مثبت بدید احمد متحجب به مهدی نگاه میکنه اگه صدامون کرده باشم میان صدا کرده باشنه دیخوام چرا دعوتتون کردن شما رو تار رو صدا نکردن نه حاجی چیزی نگفته خدافرست یاری. سید با ماشین میره و احمد و مهدی به ماشین که دور میشه نگاه میکنه. رفتن. میشستمش دیگه. گفتم امکان نداره دعوت تو بپذیره. خوشم نمیاد میشم. از رفتن فرانسه به ما نمی اومده قهوه خونه احمد و مهدی به اتفاق موسی دوگار فین بردارش روی تختی با فرش ایرانی نشستن و میخوان دیزی بخورن موسی دوگار مزه آبوش توی که خورده تایید میکنه احمد تکی نانو برای ترید توی بوشقابش میریزه ایده دیگه <تصفح> <تصفح> شکنه از پر بخور آقا شده شما رایز با؟ همده اینجوری کنم برزیم تو, تو بعدی نو بگی با یک تک نون یک تک نون بشت بگو بیپ بخور بخور خوشمزه از تمام. بار وای. بخور بخور فیلم بردار گوشکوب و دیده و متحجب به اون نگاه میکنه این قاشقه چطوری با این قاشو غذا میخورن؟ نه الکس نه با اون گوشتو میکوبن اینطوری و خودش گوشتو میکنه مثل چینی ها که با دوتا چوب غذا میخورن مثل گرزه دو کلمه حرف میزدی طرف رو و آدم سختیه راضی نمیشه به این سوداگه خود میدونه که بخاشون میزدی میگفتی یه ما مسافرت مجانی افتاده آخرش هم دو سه هزار یورو میذارن دستش این بده؟ خدا پدر مادر تو بیام موزه بابا حاجی اینجوری نبود که از موقعی که حادثه سر پیدا شده چشش تو اونه. هر چی میگه اونم غیر غره میکنه من میگم نره تو میگی به بابا بابا بابا کلنها اونا به غذا خوردن ادامه میدن و شاگرد قهوه خون زغارو روی منقل آماده میکنه. روز بعد موسی دوگار توی ماشینی نشسته. ماشین از بین جاده با درختان بلند در دو طرف عبور میکنه که تلفن موسی و زنگ میخوره بیالو بله بفرمایید؟ اه, اه سلام برنار نه مشکلی نهده همه چیز خوبه همونطور که گفتین این نمایش تعذیه منحسن به فردی بله بله بله چی؟ جامپول؟ از سرش اسکن کرده؟ میشنمم میشنم یه لختی کوچیک توی مغزش دیده شده؟ جامپول؟ اجا باشه باشه نام خدیع قطعاتش. این داخل و نگران نگاهی به گوشی تلفن همراهش میکنه. اینا کشو در میاره و به بیرون نگاهی میکنه. ماشین موسیو از کنار تیرهای چراغ و چندین قبل محلی گذر در ترکیه احمد لباس قرمز پوشیده و تعزیه خانان رو راهنمایی میکنه و گروه فرانسوی هم آماده تصویر برداری میشن شما تا قبل از اینکه آقای گادیاو یه ذره شروع بکنید این بنده خدا الان دوربینشون بیکاره فیلم بگیرن شما مگه آقا بگید صداشون رو میاد میشه فیلم بگیرن شخصی با لباس سبز و کلاهخود پردار سبز شروع به رژه خوانی میکنه با شخص دیگه‌ای که لباس قرمز و کلاه پردار قرمز داره به طور نمادین جنگ و شمشیر به سپره هم می‌کنه. کلش کنی؟ بله. اونا میارن. پا؟ می. ای برنار از بیمارستان راه افتاده بیاد اینجا فقط واسه این که از آقای هادی تشکر کنیم شرمنده بالاخره شما از قول ما از ایشون کنید خب هاج آقا اینا جواب میخوام بالاخره وقت برای ویزا اقدام کنه اصل گزارش یکی وام پاسپورت شما شولت کنیم که نیومده که اگه اتفاقی افتاده باشه چی خدا نکنه بابا خدا نکنه هاج یعنی شما هیچ آدسی تلفن نشونونه هیچی ازش نداری؟ شما یه جوری حرف میزنی که انگار رفت اصلا نیاد خب شادم شب یه کاری براش پیش اودی فردا میاد. خب میونه ها نگران شدیم گفتیم خبر بگیریم اینکه شما هیچ آدرسی شمار تلفنی ازش ندارین باعث تعجب ما شد. من فکر نمیکردم آدم از هم کار هیچ سر و سراغی نداشته باشه. خیلی هم قدیمی نیست. سه سال پیش مثل این شباه برای ده محرم کار میکردیم. امام پوشمون منتصب کرد. پاش شکست، افتاد او تخت بیمارستان. فردا شبش ستادی پیدا شد. از کجا اومد نمیدونم؟ گفت من صدا کردن بیام. گفتم کی؟ گفت مگه کار شما لنگ نشده؟ گفتم چرا؟ گفت من این تازیانه رو از برم. میخوایی یک تیکشو بخونم گفتم بسم الله خوند همه انگوش به ده مونده امام حسین شد گفت صدام کردن؟ ما هم زیاد پا نشدیم بعد از دهه لیبش زد یه سال بعد سر موقع دوره پیدا شد امام حسین ما پاش سالم شد اما سیدهادی نشد سیدهادی یا چیتی دیگه است گروه بدون سید سیدهادی به تمرینشون ادامه میده. عصبی رو دور میدانگاهی میگردنن و حاجی که روی صندلی نشستی و مستحسن تسبیح میچن مدتی گذشته و حاجی از اومدن سید هادی ناامید شده در ذهن حاجی که با چشمان عشق به نقطه خیره شده مکالمه موسیو و مهدی رو میشنریم عجی سلام سلام موسیو حاج آقا چه خبر؟ هیچ نهی من؟ میبینی که اگه کسی سپس؟ ویلو فکر و که سرمونی نوگر حالا تحضیه تحتیل میشه اگه جنازه هم میفته اینجا این تحضیه چل سال تحتیل نشده روز برم احمد و حاجی توی ماشین هستن و حاجی به دنبال نشانی از روی کاغذ میخونه یواش برو اون برد چارا باید چرا رو رد کنی چشم بچه‌ای خودمون چطورم مثلا کی بزنم چای ستادی خیلیه مثلا به خودم نیستا مثلا همین آقا مرتضا صداش حرف نداره فقط به صدا نیست احمد آقا شرط و شروط داره. خودت خودت بیگی شبیگردونی شبیگردونی فقط به رخت و لباس و اسم و قصه امام حسین تعریف کردنه اگه اینطوری بود که ما خیلی وید معتلیم این تلویزیون چیا و سینما چیا خیلی بهتر از ما این قصر رو تعریف بکنن یعنی آقا از بچه ما بهتره؟ میبینیم یادت نیست قبل از صدها دیر رحیم اما کشم به پاساج رسیم از ماشین پیاده شده وارد پاساج رسیم از کنار پله ها رد میشن و وارده ابزار فروشی میشن که رهیم که محاصن پوری به صورت داره با تلفون صحبت من که بزنم. بزنم اینا همش تشریفات فرمالیت هست من همه اینا رو میشتسم شما اقیی رفتی طبقی دوبون پیش اسماییلی مشکل تله میری اونجا باش صحبت بگنه حسابدار دار میدنه رفیق ما هست اصلا آره عزیزم سلام علیکم سلام, سلام علیکم هروداتما او چند سن هم دیگه رو ندیدیم خیلی خوش اومدید ها یه هاج رو و یه کرک کل کرج رو کاکلش میچرخید مدرسه هاج از اختیار بده عجیسا گوشی دست باشه ممه جان یه چنط چای ورده بیاد خیلی کوچیکم خوش من دیدم ترون هواش همچی ویگنگیت عمل کرد <تصفح> خیلی خوش آور بود تو ویگنگی درون آدی خیلی مخلصه بفرم بفرم نه موزه هم نمیشی نه داشتی بلات بیشودیم که توی مساله ماجمای میزارم اختیار داری آه تو ازت دیدمت بعدی سال مساله و از ما اختلال کنی گفتم علیم گوشیم داری ساپا میان بیچون بیچون بفرم فاش میکنم طور خودت بفرم بفرم خیلی روش ساپا من شرمندم گوشی گوشی ایشون را رو بندسن من در خدمت شما بابا تو گفتی نیم ساعت دیگه زنگ میزنم مرد حسابی اون وقت نیم ساعت شد دو ساعت سیوس اینجا منتظر شرمنده شدیم خب چی شد؟ بکی ما اینا پول دادیم واسه اینکه تو مناقصه برنده بشیم که نشد که نگو ن... اینو به من نگو ما خودمون اهل اتصالات این پیسونو واسه میکنیم به میلنگ میلنگ به سیننس این حرفا چی چی همه چیزو ما به هم واسه میکنیم همین الان میری به اسماعیل واسه میشی و, و, و, و سلام وربینی شکل ماهیت برام. من شما سه تا استعلام بیشتر میخواد. خدا پدرتو بیا بیامرزه نوکر صفات. من دو تا اسلام از رفقا گرفتم شرکت‌های همجوار. مور امضا تشکیلات آدرس همه چی هم روشه. یه دونه استعلام منم خودم نوشتم. میدم سیروس به خودش میاره اون رو. دیگه چی میخوان؟ آ، بابا من با حسابدارش رفیقم. آره من خودم خدمتش رو رسیدم قبلا تو کاریت نباشه این کار انجام بده. کجا زام می‌زنن؟ خب بزنم بزنن بابا همه چیز ردیفه گفتم آدرس مرد تشکیلات همه چیزش بله اله لا اله ایلال خب من میخواستم به اینجا نرسه هر کسی یه قیمتی داره بله بپرس قیمت هایم آقا چند آقا هدیه اونم میدیم خوبه حله حاجی تمومش... و احمد نگاهی به هم میخونن نفس امیر میخوشن و چپ چپ به رحیم نگاه میکنن حاجی چنان چپ چپ به اون نگاه میکن و چیزی نمیگه و صدای رحیم در گوشش میپیچه که زمانی تعذیه میخونه رحیم کاغذی رو به سیروس میگیره سیروس میگیره و میره باشه باشه محطتش نکن خدا بسن اینا میخوان ما رو بپچونن که مهره من خیال کردم عین چای وی میونن این ادارات هر هم بیشتر سر کی سر شول بکنی بدتره بس ولش کن هاجی میخوای ولش کن حرفو چی ولش کن چی نمیارزه نخر من راه نمیدادم که استلام ببر سری تو تنور داغ بچسون یا ادم بجو بجو بجو دستا لردک برو برو سار خدا بخشم قرض ندام خیلی تلفن من بزن خوشم رحیم پیش اون دو نفر میشینه چه عجب حاجی صفا آوردی به خدا خیلی ارادت داریم خیلی خوشمان را گم کردی این طرفا حالا دنبال یه محرمی گردم که تو نداری چون مهره چیه جون بخواهجی جون بگذاریم از تعذیه چه خبر براه ممکنه تحتیلش کنم برای چی؟ عیفه اماموسی نداریم شخصی شو... نداری که م... نمیشه نگه تو اگه روت میشه خود بشه باید نه؟ که از من که حرف شناوی نداره احمد جون و لب خودم باید صحبت میکردم توجین قضیه این سادگی هم نیست. چطور؟ همو پوش پیدا کنیم. تو آقادی اوکی نده سفر بی سفر. از هر دمون ول متلی. این گروه هم آگه بفهمه من کارو تعतील میکنن میره؟ شما هر دمون. اوکی ایتون... ای معزاد خوبه. زمون بلادی. این گروه نشه یه گورو دیگه. ام. بالاخره نون تو ده مییره. منو بدبخت چی بگم؟ کار درست روز به روز فایده نداره که. آگه میشد تذیه رو یه ماهی به خرج اینا میرفتیم فرانسه. من میرفتم دنبال کار اقامتم. شما می سفر خارجی میذارین تو راه؟ جانزلی زئیف، کفن هم. جانزها ولی همه چی گنزاده قند بردار. همه انگار داری با این بیچاره. یاته من زغ گفتم این بابا نمیاد کارو لنگ میذاره. یاته دیدی حق با من بود. ولی انقدر بی‌انصاف نباش. ها نه یبه، سر چی سرش بابا خدا نکنه. خیلی بساده فعلا. ببینم. نکنه خودت بلای سرش آوردی. ها؟ ولی مست کاری که خراب شد سر وزنگو پیداش میشه. میگی نه نگاه کن به همین شیرینگ ها قسم همین اتفاق میفته. من می رسال ببین فرانسه یا بزنن ببینم چی ببینم مکین تلفنم بابا آدرسش چیه چی یاره اونر میشه آره دلوئی خب بده میشم باشه بلکه مو حاجز زدم الان چیکار میکنه الان یه پی اس دارن تمرین میکنن بعد از ظهران فکر کنم دو سه ساعت بیشتر وقتشو نمیگیره فکر کنم آزاد باشه وقت <تلا prescribe> باشه بلکه دیدیم مو حاجز زنیم بیشتر ساعت دیگه نه آره باباجون بگو از طرف من داری زنگ میزنی باشه ببینم ببینم چیکار میکنین می سر میزنم حاجی در پی تعذی خان با, با یکی دو کشاورز در کنان یک دامتانی صحبت میکنه که احمد با ماشین پیش آنید تعذیه؟ حاجی مگه نمیدونی؟ تعذیه حرام شده از من میشنوی شما هم تعذیه رو دیگه گریه های شما سوابی نداره برعکس گناه های محصیت داره نردی حسابی شما که زمین داری تراکتور داری برو دنبال زندگی خودت ور کنی این کارا رو حاج آسراب اجکف نره فایده ای نداره سبک میشه حاج میگه تضیه حرام حاجی ناامیدانه سر بر میگرده حاجی اونجا رو ترک میکنه حاجی و احمد در پی آقای طلوعی به تالار می میرسند از پله‌ها بالا اومده و از شخصی که با همسرش در تریو نشستهن میپرسه: سلام علیکم، خسته نباشید. آی توله کجا میشه بدید؟ بفرمایید. اجازه ما در میون خدمت شما. اما به پشت صحنه میره. دلیرو باز میکنه و پسر جوانی رو روی صحنه در حال تمرین نمایش میبینه. شهر دروغ و ریا. از لای در اون نگاه میکنه. ویان، ویان شهرت تو مطرح کسی برای خود واسطیده خود داستانی ساخت میکند حتی نوکران من نوکران من حالا فقط دو تا از اونها رو نگه داشتم یا چی ریش تراش است یا چی شیرینی پاز احمد حاجی رو دعوت میکنه که اونم بیاد خودش به طرف گروه وقتی حاجی هم تسبیح در دست به پشت همون در میاد و به تمرین نگاه میکنه روانم روحم قلبم قلب در هم شکستم را چه کسی من هم است تو تو یا تو حاجی لحظه ای جا میخوره هر جز, هر جز. هیچ جز به حاجی بر میخور و ناراحت اونجا رو ترک میکنه تاملین نمایش تمام شده و حاجی و احمد و آقای طلوعی که صورتی تراشیده و موهای ژل زده داره دور یک میز چای می نوشن. راست ماجرا آقای طلویی از دوستای خوبنده هستن، بازیگر حرفه‌ای تئاتر، قبلا تزیه هم کار کردن. خب بله من دو سال پیش هم تو جشنواره تزیه و تئاتر رینی جایزه اول گرفتم. چه گفتن که شما تزیه کار می‌کنین. ببخشین که من قبلا نمیشناختمتون. ارادی نداره. ما هم قبلا خدمات شما ارادت نداشتیم. این چشمکی به حاجی و بعد به احمد میزنه ماشه مثل که حاج آقا سنصافی خوبی دارن نه چی چی راستش من تازه درگیر این کاری که تمرینش رو دیدین شدم البته هنوز باشون قرارداد نبستم اگه پیشنهاد شما بهتر باشه کار شما رو میپذیرم یعنی چجوری قرار داد نبستید؟ دارم سبک سنگین می کنم آجاقا سر مبلغش داریم چونه کاری می کنیم شما بهیکارت دیگیری اجازه <تصفح> شما این نکته بگم خدمت شما که ایشون بازیگر حرفه ای هستن البته اینم بهتون بگم آه. کار شما فرق داره استثناست نه اینکه سفر اروپا هم در پیش داریم اینو می بریم کجا بود اوینیون اوینیون بالاخره یه جوری با هم کنار میاییم بله حاجی سر بزیر فقط با تصویهش بازی میکنه قد نمی احمد اشارهی به آقای طلوعی میکنه که یعنی درستش میکنه احمد و حاجی در لندروبر احمد در برگشت حاجی و احمد به اتفاق شخص دیگری در استودیوی هستند و فیلم های تعذیر رو مرور میکنن خدا رحمتش کنی این هاشم فیازم رفت. <تصفيق> ها حجی حجی اکبر یادت مسئول استودیو روی تصویر جستجو می‌کنه تا <تصفيق> داشت بیست هم فراغ خودم بیارم. مسئول استیو باز هم جستجو میکنه. باشه باشه نگرش داشته این داوود هم کجاست خودشه پیداش کردم براش باشه من این خبر نداری یا چی خدا پارسال از اسب افتاد تو تازیه و کمره شکست بیمه هم که نیست خونه نشینه هیچی که سراغش نگیر ایجا بجه حاجی احمد چرا نیبری؟ من آخه خودم. آخی. اون بنده خدا به خودشم رحم نکرد راسی برزیز درویش چه خبر اون که آقابده خیل خیر حاجی رفت سوه توی پیتزا فروشی کار میکنه شوارشه الله بر الله هاجی ها علی برامین هست بچه خوبی صداش هم حرف نداره بره بچه خوبی بود و داره متشکری بعد از هر مجلس تزیینی تمام می کرد لباسشو تو تیکی می کردن تبرکه تبر خونه تا اینکه براش حرف در بردند گفتن نماز, نماز نمیخونه می می خوره همون ازمان خودش رو تو تیکی تیکی کرد از یه غریب خونه سراغ دارن پترگو همشون این کرده. هم. گفتم من تو جوار نبرم بهت گفتم از این لبنان ول من نگیر حاجی این همه بازیگرن به ولایت بازی کردن امام علی بازی کردن مختار دارن بازی میکنن به خدا میشه توش یه دونه امام پوش بده کرد. احمد و حاجی با ماشین به قهوه خونه میرسن بعد خونه لوگا و تعداد زیادی مرد مشغول کشیدن قلیان هستن احمد و حاجی وارد میشه هر دو پشت میزی میشینن سلام علیکم بچو هستین بفرم آقا سلام آمده سلام آمده سلام آمده سلام سلام دوال. دوال. اینجا پتاق بچه های سینما اصل جند با شرافی به تعذیه داره بگم آجای میخوان از یکیشون تست بگیری؟ تو چی بگیری؟ همین آزمایش کنی، صداشو بشنبی و خودشو با ببینی باشه آجا یه لاستش میاری؟ من؟ بله بله او به رنگ که خوب حال شخصی مسمن با کت و شلوار کلاه شاپو و محاساسن سفید پیش اونا میاد و میشینه برای تضیه مطلایی میخوام من شنیده بودم تو تضیه فرنگی خون داریم ولی حاجی من لو میرم مردم منو میشناسن. چون همش تو سینما و تلویزیون من نقش خارجی رو بازی کردم نقش بچه های سینما همه میدونن که من هر نقشی رو قبول نمیکنم <تصفح> تازگی اون گزیده کار شدم توا فهمم می‌خوام بریم خارج شد. ما رو خارج چیکار کنیم؟ اول بذین این چهل 40 من حفظ بشه، اون تعزیه رو بندازیم بعدا. چون حرف از پاسپورت تو خارج میاد. احمد دیگه حرفی نمیزنه. پدر جان، شما به خاطر این کارو که می‌کنین؟ پول می‌گیرید؟ خب حالا چند است؟ مرد میوان سال دیگه با سویل‌ها و چشمه‌ی روشن. یعنی شما اصن تعزیه کار نکردی؟ تعزیه کجا؟ ما کجا؟ تعزیه خونی چیه هاجی؟ ما بدلکارییم. اینجا هم عج و غربی نداری بدونی حاجی راستش اینه که من اکشن کارم چی چی کاری؟ فیلمای چیز دیگه از اینه که احمد با دست بزن بزن آنشون میده هاجی لبخند میزنه مردی میان سال با موهای سفید و ریش پروفسوری. خب بدارمم شما بگید بازیگری که یعنی چی کار یه کلیپ بود نقش ابن مرجه بازی کردیم منتظر برای حضرت علی Galerی کردیم. بر خلق نقششون برای حضرت علی Galerی کردیم. شما خواننده‌م بلدید چون تزیه کی می‌دونید تزیهات بخونند. اولا شنایمون یادم میاد یادم میاد. در در دان دان دان دان دان. گفتی به من دوست دارم خیلی زیاد خیلی زیاد. هاجی شرمنده سر می‌مونه. خوبه هاجی. الله اکبر. الله اکبر. پیرمردی با موی ریش بلند و سفید و کلاهی بر سر. کی دیگه تعذیر نگاه میکنه ۹۰ درصدش چی داری تا دلت بخواد شمر و خولی و یزید هست امام امام خود کجا پیدا میشه دیگه امام خونم که بشی آخرش تناش می‌ذاری من با پیتر بروک کار کردم میخواست منو ببره فرانسه از سیری زن بچه بودم هی هی هی بروک آمان شوان خوندن هم بلدیه؟ شعری هست به اسم یاد از آن روزی که بودی زر یار ای من دور از چشم رقیبان در کنار ای من های یار خواه بفرد. بفرد. خی... پسر جوان با موهای صاف و چشمانی خوب باقر کناجی اگه نقش خوب به من بدن آل پاچینو رو میذارم تو جیبه فقط باید اون اول یکی باشه که حمایت هم کنه تعذیم کار میکنه کاری نداره اون هم یه جور بازیه فقط باید یه جور باشه که نقش اول داشته باشه همون مرد سیبیل خوش به حالت که سنگ که نداری دل تنگ اسودی میشه به تو که خدایی آی رنگ تو عاشق نداری میشه کسی چه بگذاری مرد مقاوی. مرد کلا ب در قیالبانامی میدنم مردم آزارممرغ جدا بیا بیا رو به میشه دیگه از این لغ هاوس رو نگیریم حاجی و احمد توی ماشین هستن احمد ناامید دست زیر چونه زده و راندگی میکنه بالاخرین تزیبات بره فرانسی یا نواد بره نوزو بلا پسر پیغمبرم میارم شما سرش یه ایراد میذاری پسر نو بنش از پاندان نباوتش گفت شد حاجی به خدا اصلا امین اصلا... اون از اون طرف بریم موازه نورانی اونجا بریم چیکار؟ شاید نورانی کسی را داشته باشه انشاءالله به مغازه نورانی رسیدن مغازه لباس و ادبات تعذیه در یک زیرزمین زمین تنها بود رو همین سندلی که شما نشستی نشست هی hey, نسخه رو زیر رو کرد پایین بالا کرد هم گفت نه حاجی این عروسی قاسم اون ای که من میخوام نیست کدوم نسخه رو میخواست گفت مال رو میخوام حسام قهستانی گفتم آقا جون. قهستانی که عروسی قاسم نداره گفته نشده شما خابرنامره پیدا کن بقیه کاراش با من همین دو شبیش. نه. پری شب پیش؟ نه پریشب نه پس پریشب از تکیه آمده اینجا؟ به... به احمد که کتابی در دست داره میگه نگو از اینجا کجا میره حرفا میزنی آجیه نه اون گفت نه من پرسیدم فقط یه نشونی گذاشت و قاسم عروسی گیر آوردی برام با یه موتوری بفرست بیاد اینجا به چه نشونی؟ نورانی از بین کاغذهای زیاد دنبال نشونی میگرد اینجا, اینجا که شطور با بارش گم میشه من خدام وسط اینا گم میشم حاجی طرف ورامین بود الو بله اومد باشه ما هم الان میایم قربونت حاجی پاشو بریم امام پوشت هم پیدا شد یا علی علی ورد هر را شما بمون شما دیگه ماشین هست بیرست اون همیتون نمیخواد همی کوچه پاینیه کردن ماشین نمیارزه است من بهت میکنم. سر چرا آقه نمیخواد مغازه رو ببنده نگفتم منی نمیش دستم رویش باشه الان بر باشه گربر در این مشتریم اومد میگه باشه باشه شما دست پر نورانی و حاجی میرن و احمد تسبیح در دست در مغازه تنها میمونه احمد پشت میز نورانی میشینه و نگاهی به دور تا دور مغازه میندازه لباس قرمز، آبی، زره، شمشیر، زنجیر، کلاه خود با پرهای قرمز، تبل بزرگ نگاهی روی میز میکنه، نسخای تعذیر رو میبینه یهو چشمش به تقویم میفته و ورق میزنه روی صفحه نوشته عروسی قاسم با پیک موتوری برامین، ایستگاه سیادت مثال فروشی قنبری کوچه عقیقی شماره هفت منزل قاسم و آقای احمد لبخندی میزنه. کاغذی رو برمیدار و یشونه یادداشت داشت میکنه خودکار رو به گوشهی میدازه حالا مدتی گذشته و نورانی به مغازه برمیگرد و از پله پایین می‌آید. گم شده پیدا شد چی ستادی؟ نه بابا حاجی از این مجیدی که میگوتن مسی که بعدش نیومد. کو حاجی الان مجید ماشین داشت با هم رفتن کراش تکیه. خب... یه پیغامم حاجی برای شما داشت. که چیکار کنم؟ گوش شما خود پیگیر کار آقادی باشه. بلکه پیداش کردی. فعلا که آدرسو پیدا کردم. برای کلا یوا علی. خدا. قربانه <تصفح> دست علی به امراض. یا خدا. احمد با نورانی دست میده و از پل‌های مغازه بالا میره. احمد با ماشین از نزدیک تابلو رد میشه که روی اون نوشته کیست مرایانی کنه غروب شده و اون به راه خودش ادامه میده احمد سر بر دست نهاده و رانندگی میکنه و در فکره شب شده که به محل مورد نظر میرسه لحظه ای رد میشه دنده کمی بعد احمد در خونه او. زنی چادری در رو باز میکنه. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکوم شرمنده مظرم شدم. آدرس اینجا رو دادن گفتن قادی اینجا هستن. هر هنوز که نیامده ما درجو. از غروب منتظرشیم. فکر کنم کم کم کن دیگه باید پیداش بشه. بفرمای تو. بفرمایید. یالا یالا. احمد وارد حیات خونه میشه. بفرمائی. الان یک ساعتی که این قاسم پاک پاکوانی دیونه کرده همینطوری داره نق میزنه دیر شد دیر شد افتاده به جونم. تشت آبو بیار آب گرم بریز توش میخوام سرت همه میبشورم دیگه حالیش نیست که من دستو پا ندارم من دیگه اون محترم ده سال پیش نیستم باید. قاسم روی زمین نشسته با دست راستش پاهاشو جمع میکنه دست... ببخشی حسون من راضی به زهبت شما نیستم خدا میدونه هر دفعه که آقا هادی میاد اینجا برای قاسم میبرش همو من میمیرم و زنده میشم ولی چکنم که دیگه از قوت و حرکت افتادم همون تشته که گرفتم دستم هنوز شونم تیر میکشه تو رو خدا امشب یه جور باهاش صحبت کنم که دست داره چی دست فردار آج محبوبه یه کلام بهش گفته امشب روزه بیا خونه میگه باید پاک باشم برم روزه ما من نمیدونم آقا هادی بهت چی گفته اما قاسم گذاشته به حساب اینکه اومدی همومش کنی و ببریش. تو رو خدا یه جوری منصرفش کن تو هم برو به زندگیت برس این بچه سال به دوزه ما تو این اتاقه احمد تازه متوجه شده سر به زیر میندازه این یه شب روش برمدر. برو به زندگی میرسه. محترم خانم وارد خونه میشه. احمد به دیوار تکی میده و به فکر فرو میره. اتاق قاسم. قاسم نشسته و احمد ایستاده. احمد آقا، آقاده نگفت عروسی قاسم که میرسه دست من. من تا بخوام یه انگشت اینو ویرایش کنم میدونی چقدر طول میکشه. کجاست؟ قاسم لحظه میمونه. پیرو. احمد دست در آب حوز میکنه و دستاشو میشوره. قاسم روی ویلچره و احمد اونو راه میبره تا به منزل محبوبه برسن. راه خلوط نبود. من شلوغی رو دوست دارم. واس خود میگم اذیت نشی. نه بابا. قاسم خدا اولین پولی که گیرم بیاد یه ویلچر برقی بگیرم. ان شاء الله ان خب درسته اول زندگی محبوبه خانم هی بخاطر منو خوش بکشه این آدرم که میگه من پارهی تنشم از دستم خسته شده چه برسه با اون حقم داره تو دم هم عروسی کنیم بهم نمیاد چرا؟ به تکیه ای نزدیک خونه رسید جوون ها اونجا ایستادن و شربت نظری میدن احمد دوتا برمیداره یکی قاسم یکی خودش میخونه من اولش باورم با نمیشد چیو؟ این که یکی میخواد با ما عروسی کنه وچه تو حاضر شو. با خاطر که محبوب خانوم من یه آدم عادی نیست. ای بابا. بنده خدا دیگه چه نقصی داره؟ اوه عمله اون ناقص نیست. یعنی چی؟ اون شاگرد هادیه. هادی؟ آره دیگه اونم مثل من شاگرد هادی. تو من شاگرد هادی هستی. فکر دیگه می‌خیلن می‌دونی. کجا می‌دونستی؟ آقا عادی گفته بود آدمش شوخی هستی یا <تصفيق> مگه از منم مست حرف زده بود آره پس تو از حاجی، از همه اصلا یه جورایی من زندگی رو از منظر او همیشه بهش میگم نمیدونم از خوششانسی من بوده یا بد شانسی تو که کلاس اول دبستان شدی معلم من از اون روز حالا همین جوری وبال گردنششه شد. خسته شدی؟ نه استفاده میکنم میدونی محبوب خانم اول کتابامو خونده بود بعد آقا بهش گفته او مثلا من اینجوریم یه جوری, جوری مثلا کلک زد بود دیگه بهش هم آره؟ نوشتی؟ آره یه دونه قبل دانشگاه دوتا بعد دانشگاه احمد متعجب باز همیسته هم دانشگاه رفتی نه نرفته بابا دیر شده اول آقا اگه بخوای واسدی که نمیشه که روزه تمام میشه بریم به در ورودی منزل رسیدن. چند نفری وارد خونه میشن. هاج آقا و یه نفر دیگه دمی در ایست دادن. آقا با قاسم دست میده و سرشون میبسه. هدر زنشون. سلام علیکو هاج <تصفح> آقا. سلام عزیز دلم. شبت بخیر. خوب هستیم؟ یا علیک. کجه خاسم جون؟ احمد آقا. یا الله. شب شما بخیر. خوبیم سوال. قول و سازا. خیلی خوش مدیم. صف حالا احمد آقا رو فرستادن دیگه. در خدمت شما. خوش اومدی. زنده باشی. بفرمایید تو. میمونم با قاسم میام قربون شما. قاسم آقا رو بچه‌ها میام میارن تو. شما بفرمایید. حسن فلان در خدمت شما. عموجون بگو محبوب خانم بیاد دم در. چه خبر؟ قورمانه سوما. خوب هستین؟ خوب ماندی. مش... شرمنده دیگه ما که خودمون نمیتونیم بیایم ما شاء الله. خدا حفظت کنه. ما دلون پلو شما شما هم دل پله معنی نمی‌دونن. یا علی. محبوب چادر مشکی به سر بیرون میاد. قاسم و بعد احمد به اون نگاه بابا بیا کمک قاسم از دیدن محبوب خوشحاله محبوبه میاد و قاسم و با ویلچهر میبر دیشتر که خواب دیدم منم تو خوابت بودم آره صدات کردم قاسم اینجا همون جایی که همیشه دوست داشتی بری من به دوتو جای نمیشم منم تو من خوابت میام من همیشه خوب تو خواب همدیگه هسته بس. در جاده برف گرفته احمد ماشینو می‌روم. به دهی رسیده. می‌یست. پیاده میشه و وارد مغازه میشه و اول سلام نلیکم. خسته نباش. سلام نلیکم. دو ماشین میگردم. میگن تو همیده درس میده. باده. محمد حسین، محمد حسین بابا، بیاین آقا هر مدرسه. سمط ما منتظر شما بودیم. منتظر من؟ بله، بگیرین مغازه رو بسته بودیم، رفته به مدرسه. احمد از این حرف خیلی تعجب کرد. سلام. کرده. سلام علیکم، خسته نباشید. عادی تو مدرسه است؟ دیشب اینجا بود. آقا یا علی. احمد با پسر جوون صاحب مغازه سوار ماشین میشن و حرکت میکنه. جلوی مدرسه ده چهار پنج نفر منتظرند. احمد با ماشین میرسه جلو میاد و نگه میداره احمد و پسر جوون پیاده میشن و بقیه به استقبالشون میاد. چرا نایمدی؟ گفت کی میاد؟ خب بابا شون شد اومد اومد, اومد. اومد. اومد بابا نوش سلام علیکم سلام علیکم خوش اومدید خوش آقا دی کجاست آقا دی ما می‌خواستیم خبرش از شما بگیریم که از من بالاخره تونس ماشینیشو واسط جاده برداره یا نه آخه بدبختی نداش یکی از ما هم باش بریم حاج آقا ماشینی که شافنر پیش فقط جاده سقی می‌تونه ورش داره ماشینش تو جاده نبود نه الحمدلله پس بالاخره تونسته ورش داره ايش تو این ماشین آقا نریش از صبح ده بار رفت و اومد و همه آجور و سیمان ها رو برداش برد درست ها وسیع خدا از دیروز صبح از رو به شما بیدار من چه درخور؟ ماشین؟ به ماشین احمد شده چرا نمیتونه دیگه 5 تن بار می‌بده نه آقا این 1 تنم نمیتونه اگه دو بار سه بار ور می‌داریم میبریم. بچه‌ها چهار تا جنگی بپرین آقا وانت میره اشتباه شده آقا ازباده ازباده. آقا بیا پایین بیا پایین جوونا میرن اون پشت ماشین سوار میشن چی شده چیه چه خبره کار دیگه آقا من براش نمیزنه. نمیزنه. یه دقیقه شما اشتباه مرد محسن دست احمدو میگیره و میبره و جوون ها هم پیاده میشن. مرد محسن با احمد در اتاق خرابهی صحبت میکنه. شما رفیق آقادی هستی یا نه؟ شما فرض کن هستی. خب، الحمد لله رب العالمین. دیشب چه ماشین آقادی خراب شد پیغام فرستاده که امروز یکی از رفیقاشو با وانتبارش میفرسته تا تیراهنا رو بار بزنه برداره ببره حالا شما امروز اومدی رفیق آقادی که هستی. وانتم که داری حالا بینی یا بین الله شما جای ما بودی چی فکر میکنی اصلا تصادفیه من خودم روز در روز دنبال هادی می‌گردم. اصلا نیدمش که هرچی حفی بهم بزنه. بالاشم رسیدیم اینجا یه کارو 10 نفر پیدا پشت و بالا میگن تیرام بار بزن. خب شما باشی شاکی شیشا حاکی می‌شی دیگه. خب خود شکل این شکله ماهیتم. اینو راحت هم اینجا اهل محل راجبه باقاهادی یه جوری دیگه حساب می‌کنه. راجبه رفیقاشو همینطور. اصلاً من وسخای می‌کنم. یه کلام بگین هادی رو کجا میشه پیدا کرد؟ مثلا بس... سال دیگه بود چه ای بابا سال دیگه؟ آره ما دیدیم اگه یه بار اون دیگه بزنه سخف اومده پایین درست بسه ایف ده در سال بیش که سخف اومد رو سرور بچه همون ایف ده در سال بیش سخف ریخ آره بچه خودم زیر آوار ماند خدا بیام ورزتوش البته بقیه بچه رو از زیر آوار کشیدیم بیرون فقط یکیشون از کمر به پایین فلد جون قاسم ایش ناسیش آره بابا شاگرد آقاد ماشین ها هادی کنان جاده در راه ناگه ها بار سید هادی رو میدینم که خراب در روشه ایستیده میستن می بونی های گرچ از وانت به بایی افتاده و تعدادی هنوز بار وانتی همه از ماشین پیاده میشن هر بود داغون شده کپوتش هم بازی که شوشه ده مهمیتوزا. احمد توی وانت هادی رو نگاه میکنه با دست شیشه رو تمیز میکنه یک تصبیح و تکه پوستی میبینه که روی اون چیزهای نوشته شده احمد به فکر فرمید. دوباره همه سوار میشن و راه شده. از جاده آب گرفتهی رر آقا موسای موسین و جوان ها تیراهن بر دوش حرکت میکنند. حمله تیراهن تداعی کننده ی حمله علم امام موسین یه نفر جوشکاری میکنه تیراهنی روی چند آجل میکنه دو جوان بشکی رو حمله میکنن جوشکاره حمله نردبون آهنی جوش کاری رو میارن و کنار تیراهان تیراهن دیگه جوش جوشکاری حمله تیراهن جوش کاری باز هم تیراهن جوش کاری و بازسازی مدرسه ادامه داره دسترسی به تلفن تا نسوش. احمد. با تلفن صحبت. ما با با با کسی آدرسش نمیدونه کجاست. مجید راست؟ حاجی تو رو خدا یه نفر انتخاب کن بالاخره. این تعزیه میمونه ها. باشه. ان شاء الله بگم فردا حاضر پیدا کام برسیم خدمت شما. احمد و موسا و جوان ها دور آتیش نشستن و صحبت میکنن. نه. اون اش اینجا که نیست. موسی گفت معلم همین مدرسه هست او پس واسه چی میاد واسه چی میخواد مدرسه رو بسوزه عادی خان اینجوریه دیگه میره میره یهو پنج سال قایوش میزنه بعد یه روز میبینی دوباره اومد کارگرا هم مشغول تعمیر مدرسه است روز که سقف مدرسه ریخت پایین یه تنه 15 نفر رو از زیر آوار کشید بیرون از رادیو تلویزیون روزنامه و مجله اومدن باش حرف بزنن یهو رفت که رفت پشت سرش هم نگاه نکرد سال بعد یه ها پیداش. شد چار روز با ما مغنیگری کرد هر وقت کاری پیش میاد اینگار مونشو آتش میزنم بوری پیداش میشه جون بچهات نمیدونی خونش کجاست ریافه من میخور بچه داشت باشم آجا <تصفح> منم پیه آتسشم بیلن یه چایی بخور گرم شی از شما در نکنه احمد استکان چایی رو از آقا موسا میگیر آورم نمیشه تمام شد اینشالله نماد زور و عاشگاه رو زیر همین صفت میخونی <تصفيق> بقیه صاحب از ایشالله اینشالله آقا حادی هم که بیاد ما میتونیم دیگه اه اومد آوی رنگی وارد محبته مدرسه میشه. ایوه آجی خیلی خوشحال میشه بلند میشن و به استقبال اما سید حادی نیست تنبال آقا موسا میگردم خوش اومدین شما آقا موسو هستیم وای شما از طرف آدی خان امادن صبح باید میرسیدم باستی تیراهن ها آره خلاصه شرمنده ماشینم تا یه ساعت پیش خراب بود گرفتار بودم گفتم ببینم اتون تو فردستا قرارامونو بذاریم بیبینی که تموم شد روم سیا روی دشمنت سیا چطوری آوردینش خدا به آقا هدی خیل بده رفیق زیاد داره ای بابا شرمنده, دشمنت شرمنده باشه. حالا بی بریم بیشینی به هم دیگه چایی با خوریم سلامت باشی باید عزتون میخوام برم بر پیش سلام برسو آقا شرمنده از آقادی آدرس این نشونه ای چیزی نداری؟ نمیدونم این شب دلو ندیدم بشیم نگفت میاد اینجا؟ چرا یه قرار تو کرج داشت یا علی, علی یا علی باید باید یا علی آقا مساقه زردی من هم باید زحمت کنم برم که خطرناکه همشه ها بیبریم خونه بابا شاید آقادی پیداش بشه. اینجوری اینجوره مزامتون میشه ای بابا یه شب هزار شب نمیشه یا علی؟, علی بریم بابا موسا و احمد میرن صبح شده احمد در بالکن نشسته با آب بشکهی دست و صورت هسته شیر رو میبنده بلند میشه دستی به موهاش میکشه و نگاهی به کوههای برف گرفته و هوای پاک ده میندازه هوله از روی بند برمیداره و دست و صورت و محاسنش رو خشک میکنه حوله رو دوباره روی بند میندازه میخواد بره که چشمش به آینه کوچک دیواری میافته نگاهی توی آینه میکنه آقا موسا میاد کجا صبح به این زودی؟ تو مناظره قربونت برم زحمت دیدین برم کرج برسم زهره بدون تعارف بمو فضا جان باید برام قادی رو بدونه خیلی زحمت برین خلص تمامه قادی دست درد نکونند سلام عمره به قادی برسم یا علی مدد یا علی یاره قربونت غیر پیش با هم دست میدن و احمد میره و موسی به اون نگاه میکنه احمد آقا احمد مییسته یه دقیقه واشتا کارات دارم موسی کتاب شده. به دست از پیلا پایین میره و به احمد میرسه خدا خیلی شرمنده‌ت امام جان زحمت این کتاب افتاد گردن شما. بخش. اختیار این چی هست؟ یه نسخه خطی تذیه است. این شب که راننده وقتی اومد یادم رفت برام بهش. عروسی قاسمه. آوادی سپرده بود برام به رانندوانه تا برسونه دست قاسم. آقا من خیالت راحت می‌رسونمش. دستت درد نکنه. بابت زحمات دیشام شرمنده. برو خدایا این حرفا رو از شما واسه صدا شاداب. یا علی یا علی مدد. قربون شما. خدا. باز هم دست میدن و احمد میره. از کنار منبع آب و دیوار قدیمی رد میشه جلوی تکیه گروه تحذیه و فین برداری باز هم آماده هستند همه لباس پوشیدن بعضی سوار بر اسب آماده شروع کار هستند هاشتاهر و مهدی و موسی و دوگار همچنان منتظرن و شمرپوش با تلفن همراهش صحبت میکنه. الو! الو! سلام وجی جم خسته نباشیم نمیدونم وجی چیکار کنم به من پوش نیومدن. ها <تصفيق> زنانی چادر مشکی پوشیده برای تماسی تازی مهدی با تلفن صحبت میکنه و مثل همیشه موسی دوگار و دوگارو دعوت به آرامش میکنه. شیم همچنان با تلفن صحبت میکنه. من بیرون زنیم. حمدالله تکلیفه خدا خسته حاجی طایر مستحصل قدم میزنه و هر کسی به دیگری نگاه میکنه و نمیدونه چه کاری باید بکنه احمد با ماشینش در جاده و در راه برگشت از همون جاده که ماشین خراب هادی رو دیده بودن رد میشه ماشینو از اونجا بردن و فقط یه گونه گچه پاره اونجا افتاده احمد خوشحال و راضی لبخندی میزنه احمد به تکیه رسیده ماشینو متوقف میکنه و پیاده میشه واردی تکیم بایدی احمد شونه هاچتاهر رو میبوسه خدا حافظ یا علی میریم لحظه میسته و با لبخندی به هاچتاهر نگاه میکنه احمد سوار ماشین میشه را میافته احمد آروم و قرار نداره و در فکره در جاده با درختان بلند از کنار وانتبار سفیدی که روی کاپوت اون پرچم سبزی نصب شده رد میشه احمد نگاهی میکنه و لبخندی میزنه در آینه بغل به وانت که دور میشه نگاه میکنه توی فکره میسته بوزفندان مشغول چراح هستن و تراکتوری مشغول کار احمد نگاهی به اونها میرزه به اطراف نگاهی میکنه پیاده میشه در جایی ایستاده که جاده دو راهی میشه نگاهی به یک سو نگاهی دیگه به دیگر سو نمیدونه چی کار کنه قدم میزنه. سر به آسمون میبره و نگاهی میکنه تصمیم میگیره سوار میشه و به راهش ادامه میده در فضای باز خیمه های سبز و قرمز و سفید برپاسته پرچمهای سبز و قرمز و سیاه هم در زمین خود نمایی میکنند مردم از زن و مرد و پیر و جوان و کودک جمع شدند و لابلای خیمه‌ها ها حرکت می کنن. در کنار ورودی پل آبر پیاده مردم برای دیدن تعذیه جمع شدند. همه جا مجالس تعذیه است. هیئت متوسلین به حضرت علی ازخر هم خیمه برپا کرده و آماده نمایش تعذیه گروه اشخیا با لباس قرمز و گروه اولیا با لباس های سبز و همراه اسب در خیابان حرکت میکنن شوتورها در میدانگاه هستند و مردم با ماشین برای دیدن مراسم تعذیه اومدن شمخوش سوار بر اسب گروه اولیا را میبینه که سوار بر شطور حرکت میکنند. بر شطور ها پارچه های مشکی انداخته شده و اونها را آزین بستند بچه های کوچک لباس سبز برتن تن پرچم های یا حسین حرکت می دن. امام خون کودکی در بغل می‌خونه. گروه عشقی ها، تیر و کمان در دست تیری رو به گلوی علی ازقر می‌زنن و امام خون همچنان می خونه. شبیه عباس سوار بر اسب حرکت می پارچه آبی به نشانه رود فراد و دو قرمز پوش در کنار رود و نخلی ها. گروه عشقی ها به شبیه عباس حمله میکنند و اونو محاصره می و همه با هم می جنگن. مردم ایستاده این بقایه رو نظارگر هستند. گروه طب نوازان می نوازن. های بزرگ و بوچنگ. زنان گریه می کنن. شبیه عباس دوباره به دل دشمن میزنه. با اونها مبارزه میکنن. تعدادی بر زمین میافتند تا اینکه گروه اشقیا باز هم اونو محاصره میکنن. یک نفر در مقابل گروهی شبیه عباس رو بر زمین میندازد. زنان گریه کنان نگاه میکنند. شبیه عباس مخلوب دشمن میشه و مردم گریان نگاه میکنن بعضی ها از این مجلس عکس برداری میکنن. کاروان اوسرا سوار بر شطور که اشقیا اونها رو همراهی میکنه. تیرهای شکسته بر زمین در مقابل نقاشی زلجنا اسب امام حسین علیه السلام به نشانه شهادت ایشان خودنمایی نمایی کنه دستارهای سبز و روبندهای سبز خونالود به نشانه دیگر شهدای کربلا پی کری شبیه کودک با تیری در گلو زنی سیاه پوش بر سر پیکر برادر او شبیه زینب است و مردم که اونها رو میبینن و گریه میکنن و تعذیه که همیشه بر شنوندگان ارجمند رادیو نمایش فیلم راه طی شده رو با همگه شنیدیم امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه باز هم مثل همیشه از شما درخواست می که با ارائه نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون ما رو در هرچه بهتر ارائه دادن این برنامه یاری بفرمایید فرشته آذرنی ها کننده محترم این برنامه است و مثل همیشه زحمت زیادی برای تهیه این کار کشیده همچنین جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار برنامه و من هم بهرام سروری نژات که در خدمت شما بودم و انجام وظیفه کردم با امید اینکه باز هم بتونیم در هفتههای آتی در خدمت شما باشیم همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار